کتاب افسانه های غول ها نویسنده محمد شمس ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده هانیه این داستان جک غولکش این قصه ممکن حقیقت نداشته باشه اما خیلیها عقیده دارند که پسر پسربچهای به نام جک مشهورترین غولکش دنیا بوده است جک پسر کشاورز ثروتمندی بود که در یکی از شهرهای انگلستان زندگی میکرد در آن زمان شاه آرتور بر انگلستان حکومت میکرد و غور عظیم و جسه باعث ترس و وحشت مردم شده بود خول در غار بزرگی زندگی می کرد و آنقدر زشت و وحشتناک بود که هیچکس، حتی اونایی که خیلی شجاع بودن جرأت نزدیک شدن به غار نداشتند. نداشتن. جد داستان های وحشتناکی از غول شنیده بود. او شنیده بود که چگونه غول مردمون می و می خوره. چگونه دلهای کشاورزار رو می دزده و اونا رو در غار بزرگش انبار می انباری که به اندازه خزانی شاه ارزش داشت. قول زندگی را برای مردم آن شهر غیر قابل تحمل کرده بود. به طوری که روزی مردم شهر جلسه تشکیل دادند، تا شاید راه حلی پیدا کنند. جک و پدرشم در این جلسه حضور داشتند. پس از بحثی طولانی و بینتیجه جک پرسید به کسی که این قول را بکشه چه جای زی میدین؟ حاکم شهر جواب داد تمام گنجینی غول مال کسیه که اونو بکشه. جک فریاد کشید چه جایزه خوبی من شما را از شر این غول بدجنس راحت میکنم. جک به همان اندازه که شجاع و دلیر بود باهوشم بود. او کلنگ و بیل و شیپوری فراهم کرد و فردای اون روز صبح خیلی زود به طرف غار رفت. زمستون بود و روزها کوتاه. اما جک با تندی و چالاکی رفت و رفت و رفت تا نزدیک غروب به کوهی رسید. کمی که بالاتر رفت، در گوشه‌ای نشست تا استراحتی بکنه. ناگهان صدای های وحشتناک غول رو شنید. جک از اینکه غول خوابیده بود، خیلی خوشحال شد. کمی دیگه بالا رفت و با خیال راحت مشغول کندن زمین شد. او تمام شب و کار کرد و گودال بزرگی کند. بعد روی و با علف و نی و چوبهای بلند پوشوند و روی اونا رو خاک پاشید. آن وقت با تمام قدرت توی شیپورش دمید. همین موقع غول تلو تلو خوران ظاهر شد و با عصبانیت فریاد کشید آهای کرم کوچک چرا مرا از خواب بیدار کردی اونقدر کوچکی که برای سبحانم چنگ به دل نمیزنی و به طرف جک رفت اما یک دفعه با صدایی وحشتناک توی گودال افتاد به طوری که تمام کوه لرزید جک از اون بالا فریاد زد خب پس تو مرا برای سبحانهت میخواستی؟ اما باید بدونید که دیگه عمرت به پایان رسیده و دوران کارهای زشت تمام شده. بعد به طرف غار دوید. آنقدر طلا و جواهر در غار بود که میتونست یک شهر رو ثروتمند من کنه. به این ترتیب جک پاداش شجاعتش رو گرفت. مردم شهر وقتی خبر کشته شدن غول و, و شنیدن اونقدر خوشحال شدن که به این قهرمان کوچک شمشیری با کمربند نقره‌ای هدیه کردند. شمشیری که روی آن عبارت جک غولکش تلادوزی دوزی شده بود. شاید فکر کنید جک خوشحال و راضی در مزرعه پدرش نشست و دنبال هیچ کار دیگه ای نرفت. اما اینطور نبود. ها تمام فکر و ذکر جک را مشغول کرده بودند. روزی جک و پدرش برای خرید گوسفند به شهر دیگری رفته بودند. جک شنید که غول جادوگری در این شهر هست که در قع جادویی در میان جنگل زندگی میکنه. جک به طرف جنگل برا افتاد. اونقدر رفت تا خسته شد. زیر درختی نشست تا کمی استراحت کنه. خیلی زود به خواب رفت. غول جادوگر که از اونجا عبور می کرد، او را دید و توی دستش گرفت و با دیدن نوشته روی کمربند فهمید که دشمن قسم قسم‌خورده ها رو به چنگ آورده. غول جک را به قلعه اش برد. وقتی جک بیدار شد، خودشو بالای زمین و توی دست غول دید. روی زمین استخانهای زیادی ریخته شده بود. غول جک را کف یکی از اتاقهای قلعهش پرت کرد و گفت به زودی استخانهای تو هم قاطع این استخانها می شود. جک برای اولین بار در زندگیش واقعا ترسید و ترسش با شنیدن آهناله کسایی که حدث میزد مثل او اسیر شده باشند بیشتر شد. جک به طرف پنجره دوید و غول را دید که با غول زشت دیگری گفت و گومی کرد. جک با وحشت فکر کرد حتما غول دارد دوستش را برای خوردن من دعوت می کند. ناگهان فکر خوبی به نظرش رسید. در گوشه برج دو تکه تناب محکم و کلفت پیدا کرد. اونا رو برداشت و در ته تناب دو حلقه درست کرد. اون وقت با عجله خودش را به بالای پنجره رسوند. و درست در لحظه‌ای که ها از زیر پنجره رد می شدن، حلقه حلقه‌ها را به گردن ها انداخت. قبل از آنکه دو تا غول بفهمند چه اتفاقی افتاده، جک دو سر دیگر ها را به تیری بست و محکم کشید. آنقدر ها را کشید تا صورت ها سیاه شد و بیحال شدن و روی زمین افتادند. جک از تناب پایین اومد و اونا را کشت. بعد کلید سیاهچاله های قلعه را از جیب غول برداشت، در سیاه را باز و اسیرا را آزاد کرد. اسیرا با خوشحالی از او تشکر کردند. جک به راه افتاد و به طرف شهر رفت. اما وقتی شب از راه رسید راهش را گم کرد و سر از دره متروک و ترسناک درآورد. در آنجا به جزی یک برج سنگی و بزرگ، خانه دیگه نبود. خسته و گرسنه به طرف برج رفت و در زد. در میان بحت و حیرت جگ در به سرعت باز شد و وحشتناکترین خولی که تا حالا دیده بود و دوتا داشت جلوی در ظاهر شد. این غول به گری مشهور بود. جگ فکر کرد نمیتواند به آسانی از چنگ این خول فرار کند. غول، جک را به داخل دعوت کرد و با مهربانی گفت که شب همانجا بخوابد. جک وارد شد. اما به غول اعتماد نکرد و دور از چشم او تنه درختی پیدا کرد و در رخت خوابش گذاشت و خودش به زیر تخت رفت و خوابید. نیمه های شب غول با چماغی وارد شد و به طرف تخت رفت. چماغ را بلند کرد و محکم بر رخت خواب کوبید و بعد از اتاق بیرون رفت صبح وقتی که غول مشغول خوردن صبحانه بود جک را دید خیلی تعجب کرد اما سعی کرد به روی خودش نیاورد به همین دلیل ظرف بزرگ حلیم را جلوی او گذاشت و گفت بعد از سفر طولانیت حتما میتوانی اینقدر غذا بخوری جک گفت البته که میتوانم بخورم اما وقتی که غول سرگرم خوردن بود، جک نصف بیشتر غذا را توی خورجین چرمینی که به کمرش بسته بود ریخت. غول امیدوار بود جک بعد از خوردن آن همه غذا خوابش ببرد تا او به تواند کاری را که میخواست انجام بدهد. اما جک به سرحالی یک دیر بود. جک به غول گفت حالا من کاری میکنم که تو نمیتوانی آن را انجام بدهی؟ بعد از کار کاردی گرفت و با آن ضربهی به خورجینی که زیر شکمش مخفی کرده بود زد. حلیم از خورجین روی زمین ریخت. جک گفت، دیدی من شکمم را پاره کردم و حلیم را بیرون ریختم. اگر تو هم میتوانی این کار را بکن؟ غول که خیلی خودخواه بود فریاد زد، ملخی مثل تو نمیتواند کاری را بهتر از من انجام بدهد. هر کاری که تو بکنی من هم میتوانم انجام بدهم. بعد کاردی را برداشت و ضربهی به شکمش زد و در جا کشته شد. جک بسیار خوشحال شد که توانسته مردم و از شر غول دیگه راحت کنه. او در متروک رو پشت سر گذاشت و راه را پیدا کرد و به بازار شهر رفت و گوسفندانی خرید و به خانه برگشت. چند ماهی گذشت اما از آنجا که جگ روح ماجراجویی داشت دوباره تصمیم گرفت به سفر برود. اول به دیدار دوست جادوگری رفت که دخترش را از قلعه جادویی غول نجات داده بود. جادوگر از دیدن جگ خوشحال شد و به خاطر قدردانی به او اصبی که سریعتر از باد حرکت میکرد و شمشیری جادویی و شنلی که او را نمری میکرد داد جگ با این هدایایی بیمانند جستجو برای یافتن و از بین بردن بقیه غول ها را شروع کرد او دشت بیپایان را پیمود تا به جنگل بزرگی رسید در همان ابتدای جنگل غول واقعا ترسناکی دود غول یک زن و شوهر را از موهایشان گرفته بود و با خود میکشید زن با التماس از غول میخواست آنها را رها کند اما غول بیرم فقط میخندید و میگفت که آنها را برای شامش می برد. جک با شنیدن این حرفها از اسب پایین پرید شنلی که او را نامر کرد پوشید و شمشیر جادوییاش را کشید از آنجا که غول خیلی بزرگ بود، اول پا و بعد سرش را از تن جدا کرد. زن و مرد از جک خواستم به خانه آنها بیاید تا او را غرق در هدایای مختلف کنند. جک مهمان نوازی آنها را رد کرد و گفت: قسم خوردم تا زمانی که تمام غول‌ها را از بین نبردم، آرام ننشینم. به علاوه باید غار این غول را پیدا کنم. چون ممکن افراد دیگه ای رو اسیر کرده باشه. بعد به راه افتاد و از آنجا دور شد. آنقدر رفت تا به خانه بزرگی که در پای کوهی بلند بود رسید. پیرمردی با ناراحتی در باغ خانهش قدم می‌زد. جک علت ناراحتیش را پرسید. پیرمرد جواب داد. قما اندوه من به خاطر دختر است که به دست غول ترسناکی به نام گالیکانتا اسیر شده است. او در قلعه جادویی که در این کوه است اسیر شده. جک در حالی که به نوشتی روی کمرش اشاره می کرد گفت من همان کسی هستم که تو دنبالش هستی. نه ترس من غور را از بین می برم. پیرمرد گفت از دیدنت خیلی خوشحالم، اما باید بدانی که غول رفیق گری داره که با قدرت جادویش دختر حاکم رو به گوز تبدیل کرده. جک سب کرد تا پیرمرد آن ماجرای غمانگیز و تا آخر تعریف کرد. بعد از آن به طرف قلعه رفت. وقتی بالای کوه رسید، قلعه غول را دید که دو اجده های آتش خار از دروازه آن محافظت می کردن. جک با پوشیدن شنل به آسانی از جلوی آنها عبور کرد و وارد قلعه شد. در حیات تخت سنگی دید که روی آن نوشته شده بود کسی که بتواند در این شیپور بدمد به زودی می تواند گالیکانتا را از بین ببرد. کنار سنگ شیپور طلایی قرار داشت. جک شیپور رو برداشت و با تمام قدرت درون دمید صدای شیپور تمام قلعه را لرزوند ناگهان همه درها باز شد جک با شادی وارد یکی از تالارهای قلعه شد و قول و دوست جادوگرش را دید که پشت میزی نشسته بودند جک شنل و کامل دور خودش پیچید طوری که اصلا دیده نمیشد. بعد بدون هیچ دردسری سر آن دو را از تنشان جدا کرد. با مرگ جادوگر تلسمی که همه زنان و مردان را به جانورهای مختلف تبدیل کرده بود باطل شد. گربه ها و بچه گربه ها به سرعت تبدیل به دختران زیبای جوانی شدند. از آنجا که دختر حاکم به تازگی اسیر شده بود در میان آنها نبود و جگ تا هنگامی که او را پیدا نکرد آرام و قرار نداشت. خبر کشته شدن غولها به دست جک به سرعت به گوش شاه آرتور رسید. از شنیدن خبر کشته شدن گالیکانتا آنقدر خوشحال شد که فرستادگان مخصوصی را دنبال جک فرستاد. وقتی جک به دربار رسید، پیش شاه رفت. شاه به گرمی از او استقبال کرد و گفت: "میل دارم به خاطر شجاعت پاداشی به تو بدهم." هرچه که آرزو داری درخواست کن و مطمئن باش که به آن خواهی رسید. جک بیدرنگ گفت آلی جناب آرزو دارم با دختر حاکم ازدواج کنم. شاه آرتور که بسیار احساساتی بود گفت فکر می کردم که چنین درخواستی بکنی. دختر حاکم هم از تو پیش من به خوبی یاد کرده است. به دستور شاه برای آن دو جشن با شکوهی ترتیب داده شد. و در خانه‌ای بزرگ که در میان باغی سرسبز واقع شده بود زندگی خوشی را آغاز کردند هیچ نشانی در دست نیست که جک پس از ازدواج هم به دنبال شکار غولها نرفته باشد اما اکثر مردم عقیده دارند که جک بقیه عمر خود را در کنار همسرش با خوبی و خوشی و شادمانی به سر برد